مصنوی معنوی مولوی برنامه یک جواب گفتن امیر، مران شفیان را و همسایگان زاهد را که گستاخی چرا کرد و سبوی ما را چرا شکست. من در این باب شفاعت قبول نخواهم کرد که سوگند خوردم که سزای او را بدهم. میر گفت او کیست کوسنگی زند بر صبوی ما سبو را بشکند چون گذر سازد ز کویم شیر نر ترس ترسان بگذرد با صد هزر بنده ما را چرا آزرد دل کرد ما را پیش مهمانان خجل شربتی که بهز خون اوست ریخت این زمان همچون زنان از ما گریخت لیک جان از دست من او کی برد گیر همچون مرغ بالا برپرد تیر قهر خیش برپرش زنم پر و بال مردریگش برکنم گر رود در سنگ سخت از کوششم از دل سنگش کنون بیرون کشم من برانم بر تن او ضربت که بوود قوادگان را عبرته با همه سالوس با ما نیز هم داد اوو سدچو او و این دهم خشم خونخارش شده بود سرکشه از دهانش می آتش. آتشه بار دوم دست و پای امیر را بوسیدن و لابه کردن شفیان، و همسایگان زاهد آن شفیان از دم حیهای او چند بوسیدند دست و پای او که امیر از تو نشاید کینکشی؟ کشی گرب شد باده تو بی باده خوشی باده سرمایه از لطف تو برد لطف آب از لطف تو حسرت خورد پادشاهی کن ببخشش ای رحیم ای کریم ابن الکریم ابن الکریم هر شراب بنده این قد و خد جملم استان را بود بر تو حسد. هیچ محتاج می گلگون نی ترک کن گلگونه، تو گلگونه ای. ای رخ چون زهرت شمس و زها، ای گدای رنگ تو گلگونه ها. بادکن در خانب می جوشد نهان زشتیاق روی تو جوشد چنان. ای همه دریا چه خواهی کرد نم و ای همه هستی چه می جویی عدم ای مه تابان چه خواهی کرد گرد ای که مه در پیش رویت روی زرد تاج کرم ناست بر فرق سرت توقع اعتیناکه آویز برد تو خوش و خوبی و کان هر خوشی تو چرا خود مننت باده کشی جوهر است انسان و چرخ و را عرز جمله فرعو و پایاند و او غرض ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش چون چنینی خیش را ارزان فروش خدمتت بر جمله هستی مفترز. جوهری چون نجده خواهد از ارز علم جویی از کتبها ای فسوس ذوق جویی تو ز حلوا ای فسوس بهر علم در نمی پنهان شده در تن عالم پنهان شده می چه باشد یا سما و یا جما، تا بجویی زو نشات و انتفاع آفتاب از ذره شد وام خواه، زهره از خمره شد جام جان بیکیف شده محبوس کیف، آفتاب حبس اقده ایند حیف. باز جواب گفتن امیر ایشان را گفت نه نه من حریف آنمایم من به ذوق این خوشی قانه نیم من چنان خواهم که همچون یا یاسمین کج همه گردم چنان گاه چونین با رهیده از همه خوف و امید کج همه گردم به هر سو همچو بید همچو شاخ بید گردان چپ و راست که زبادش گونه, گونه رقص هاست آن که خوب کرده است با شادی می این خوشی را کی پسندد خواجه کی؟ آن بیا زن زین خوشی بیرون شدند که سرشته در خوشی حق بودند زن که جانشان آن خوشی را دیده بود، این خوشی ها پیششان بازی نمود بابوت زنده کسی چون گشت یار، مرده را چون درکشد اندر کنار تفسیر این آیت که و انت دار الاخرت لهی الحیوان و لوکان که در و دیوار و عرصه آن عالم و آب و کوزه و میوه و درخت همه زنده اند و سخنگوی و سخن شناو و جهت آن فرمود مصطفی علیه السلام که اد دنیا و طلابها کلابون و اگر آخرت را حیات نبودی آخرت هم جیفه بودی جیفه را برای مردگیش جیفه گویند نه برای بوی زشت و فرخچی آن جهان چون ذره ذره زنده اند نقطه‌دانند و سخنگویندند در جهان مردشان آرام نیست کین الف جز لایق انعام نیست هر را گلشن بود بزم و وطن کی خورد او باده اندر گلخان جای روح پاک الیین بود، کرم باشد کشوتن سرگین بود. بهر مخمور خدا، جام تهور، بهر این مرغان کور، این آب شور. هر که عدل عمرش ننمود دست، پیش او حجاج خونی عادل است. دختران را لعابت مردعهند که ز زندگان بی آگاهند چون ندارند از فتووت زور و دست کودکان را تیغ چوبین بهتر است کافران قانع و نقش انبیا که نگاریده استند در دعیرها زانمهان ما را چو دور روشنی است، هیچمان پربای نقش سایه نیست این یکی نقشش نشسته در جهان واندگر نقشش چو مه در آسمان این دهانش نکتگویان با جلیس واندگر با حق گفتار و انیس گوش ظاهر این سخن را ضبط کن گوش جانش جاذب اسرار کن چشم ظاهر ضابط هلیه بشر چشم سر حیران مازا قلب پای ظاهر در صفه مسجد سواف، پای معنی فوق گردون در تواف. جز و جز وش را تو بشمر همچنین، این درون وقت وان بیرون هین. این که در وقت است باشد تا عجل. وان واندگر یار عبد قرن عزال هست یک نامش ولی دولتین هست یک نعتش امام القبلتین خلوت و چله برو لازم نماند هیچ غییم مرورا غایم نماند قرس خورشید است خلوت خانه اش کی جا بارد شب بیگانش. علت و پرهیز شد. بحران نماند. کفر او ایمان شد و کفران نماند. چون الف از استقامت شد پیش او ندارد هیچ از اوصاف خیش. گشت فرد. از کسوه خوهای خیش شد برهن جان به افزای خیش چون برهن رفت پیش شاه فرد شاهش از اوصاف قدسی جامع کرد خلعت پوشید از اوصاف شاه برپرید از چاه بر ایوان جا این چونین باشد چو درد صاف گشت از بن تشت آمد و بالای تشت در بن تشت از چه بود او دردناک شومی آمیزش اجزای خاک یار ناخوش پر و بالش بسته بود ورنه او در اصل بس برجسته بود چون عطاب احبتو انگیختند همچو هاروتش نگون آویختند بود هاروت از ملاک آسمان از عطاب شد معلق همچنان سرنگون زان شد که از سر دور ماند خیش را سر ساخت و تنها پیش راند آن سبد خود را چپر از آب دید کرد استغنا و از دریا برید بر جگر آبش یکی قطره نماند بر، رحمت کرد و او را باز خواند. رحمتی، بی علتی، بی خدمتی، آید از دریا مبارک ساعتی. الله الله گرد دریابار گرد، گرچه باشند اهل دریابار زرد، تا که آید، لطف بخشایش گری سرخ گردد روی زرد از گوهری زردی رو بهترین رنگ هاست زن که ان در انتظار آن لقاست لیک سرخی بر رخ کان لامع است بهر آن آمد که جانش قانع است که تمع لاغر کند زرد و زلیل نیست او از علت ابدان علیل. چون ببیند روی زرد بی خیره گردد عقل جالی نوز هم. چون تمع بستی تو در انوار هو مصطفی گوید که نفس نفسه نور بی سایه لطیف و عالی است آن مشبک سایه غربالی است آشقان آریان همه خواهند تن پیش نینان چه جامع چه بدن روزداران را بود آن نان و خان خرمگس را چه عبا چه دگدان دگر بار استدعای شاه از عیاز که تعویل کار خود بگو و مشکل منکران را و تا اینان را حل کن. که ایشان را در آن التباس رها کردن مروت نیست این سخن از حد و اندازه است بیش ای ایاز اکنون بگو احوال خیش هست احوال تو اسکان نوی تو بدین احوال کی رازی شوی هین حکایت کن از آن احوال خوش خاک بر احوال و درس پنجوشش حال باطن گر نمی آید گفت، حال ظاهر گویمت در تاق و جفت که ز لطف یار تلخیهای مات گشت بر جن خوشتر از شکر نبات زان نبات ارگرد در دریا رود تلخی دریا همه شیرین شود. صد هزار احوال آمد همچنین باز سوی غیب رفتند. ای امین! حال هر روز بدی مانند نه همچو جو اندر روش کشبند نه شادی هر روز از نوع دیگر، فکرت هر روز را دیگر اثر. تمثیل تن آدمی به مهمانخانه، و اندیشه های مختلف به مهمانان مختلف و عارف در رضا بدان اندیشه های غم و شادی چون شخص مهمان دوست غریب نواز خلیلوار که در خلیل به اکرام ضیف پیوسته باز بود بر کافر و مؤمن و امین و خاین و با همه مهمانان رو تازه داشتی هست مهمان خانه این تن ای جوان هر سباه زیف نو آید دواند این مگو کین ماند اندر گردنم که همکنون باز پرد در عدم هرچه آید از جهان غیب وش در دلت زیف است او را دار خوش حکایت آن مهمان که زن خداوند خانه گفت که باران فرو گرفت و مهمان در گردن ما ماند. آنیکی را آمد قنق، ساخت او را همچو تاق اندر اناق خان کشید او را کرامت ها نمود آن شب اندر کوی ایشان سور بود مرد زن را گفت پنهانی سخن کم شبای خاتون دو جا می خواب کن بستر ما را بگستر سوی در بهر مهمان گستر آن سوی دیگر. گفت زن خدمت کنم، شادی کنم سم اتاعه ای دو چشم روشنم هر دو بستر گسترید و رفت زن سوی خطنسور کرد آنجا وطن ماند مهمان عزیز و شوهرش نقل بنهادند از خشک و ترش در سمر گفتند هر دو منتجب سرگذشت نیکو بد تا نیم شب بعد از آن مهمان ز خواب و از سمر شد در آن بستر که بود آن سوی در. شوهر از خجلت بدو چیز نگفت که ترا این سوست ای جان جای خوفت که برای خواب تو ای بل کرم بستر آن سوی دگر دام. آن قراره که بزن او داده بود، گشت مبدل و آن طرف مهمان گنود. آن شب آنجا سخت باران در گرفت، که غلیزی ابرشان آمد شگفت. زن بیامد آمد گمان آن که شو سوی در خوفت است و آن سو آن امو رفت اوریان در لحاف آن دم عروس داد مهمان را بر چند بوس. گفت می ترسیدم مرد کلان خود همان آمد همان آمد همان مرد مهمان را گلوباران نشاند بر تو چون صابون سلطانی بماند ان در این باران و گل او خیر باد بر سر و جان تو او تاوان شود زود مهمان جست و گفت ای زن بهل موزه دارم غم ندارم من من روان گشتم شما را خیر باد در سفر یکدم مبادا روح شاد تا که زودتر جانب معدن رود کین خوشی ان در سفر رهزن شود زن پشیمان شد از آن گفتار سرد چون رمید و رفت آن مهمان فرد زن بس گفتش که آخر ای امیر گرمزاهی کردمستی مگیر سجده و زاری زن سود نداشت رفت ایشان را در آن حسرت گذاشت جامع ازرق کرد زن پس مرد و زن صورتش دیدند شمع بی لگن میشد و صحرا ز نور شمع مرد چون بهشت از ظلمت شب گشته فرد کرد مهمانخانه خانه خیش را از غم و از خجلت این ماجرا در درون هر دو از راه نهان هر زمان گفتی خیال مهمان که منم یار خزر صد گنج جود می فشاندم لیک روزیتان نبود آنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تحییه و اجرا کردن